درسی سو هشتم و السلام <تصفح> به انبیهات مباحث قرر هر با بعضی از مباحث مجموعی که آیا این مثل نفسی هست یا نه اختلاف بین بابه ها از جهات متعدده حالا اون چیزی که مصنف برونده اینه که در معلوم اشمالا حالا و معلوم به تفسیر به اعتبار فرم از بین حقیقت شئی و لحاظ از حیث حقیقت علم جمالی با علم تفصیلی فرق بود یعنی مهد بحث نیست اون چیزی که مهد بحث اعتبار علم جمالی مثل اعتبار علم آیا ماهیتش معلوم به تجمال مثل معلوم به تفصیل فیل بنابراین بحث از حقیقتش و هویتش نیست یا از ماهیتش بلکه بحث در اعتبارش آیا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی معتبر حوجیت داره یا نه اینکه بحث رو معلوم بلشی دبورده بخاطر اینه که علم اجمالی با علم تفسیلی در هر حقیقت علمیت فرقی با همدیگه نداره چیزی که بین این دوتا فارقه جوهرین حساب میشه اون متعلق این علمه این متعلق علم تفسیری یک شیء مبین معین مفصله به خلافه متعلق علم اجمالی که یک شیء مبهم و و نماردد و مرکبه لذا در مفت داره که این در محروم ها اجمانه بحث و علمی فاطره که علم یک حضرت یک حقیقت بسیط غیر قابل مراتب و ترتب و تشکیف و امثال این این یک حقیقت چه علم اجماعی باشه چه علم باشه فرض هم دیگه ندارن نها و علم پاب می‌مونه برای یک مورد متطلبش مبین و برای یک مواردی مجمل اضافه فرمودین در معلوم و اجماعان اگر معلوم به این یک مطلب، در محتوای این مطلب بنابر قاعده در علوم به اتحاد علم و عالم و معلوم نظریه درست نیست برای اینکه قائل بشین به اتحاد علم و معلوم که یک حقیقتیه در حقیقتیه نظریه درست نیست حال کنه ها به خاطب اتحاد داره اگر علم یک حقیقت وسیط مفضل مبینه محلومش میشه، هم همیشون طوری نمیتونه علم خودش که حقیقت واضحی باشه و معلومش واضحی نباشه. اتحاد حالا این نظریه که ایشون کرده بنابر نظریه عدم اتحاد بین علم آقومه معلومه که خیلی از حکمای محاصرم بایدن به عدم اتحاد زبال حسن رفیق و و بعدی از بینیم و بعضی از تلاقضی ایشون و بعضی از معاصرین این اتحاد را و ولی اکتر هم باقیدن باقیده به اتحاد آن این تفریقش باقیده خوده منطقه ارتباطی به مبارس ما بیدانه می کنه اینکه علم اجمالی یکی در حکمت مطلع و فروسفه مطمئه و یک علم اجمالی در علم حصول و فقر چیزی که ما داریم میگیم پیدا از اون چیزی که در تقییمت و فلسطت مطرحی لذا های که در تبدیل این چه ارتباطی به مبانست ما پیدا میکنم این ها بگن بعضی از موارد متعلق تکیف معلومه بعضی از موارد معلوم نیست اون معلوم نبودنش هم یا از طرف شاره یا از طرف خود ماست هم در همین هم. به داشته معلوم اجمال به اجمال بنویسیم که علم اجمالی بنویسیم اون جزبه که در رابط با علم اجمالی دادیم حتما آقاین یک دور در این تحتیلات خوندن اگر کسی هم نخونده یک دور رو نو اجمال نگاه کنه که نظریات متعددی هست بعد از فراغ از اینجه علم یک ترجط بسیحه حساب میشه معلومش اختلافیه که چی باید باشه آیا واقعه آیا جامعه آیا شیعه مردده یا یک شیعه رابعه اختلاف بخشهار کن در, در معلوم و به در اجمال باید معلوم به تفصیل در اعتبار یعنی در مجید امنا بس در مجیدش نه حالی اگر حلیقتش باشه بحث میشه خیلی صفیق تقدیری ثواب بشه اعتبار او آیا او یا او قدا در موارد مجمولی حکم به تنعجذ میکنن یا حکم به تنعجذ نمیشه ولی کلام او فیه یعنی در این مجمولی طارتا که اعتبار این منعی سو از صفت بهی و اخرى انهو بعدها ثبت تکلیف و بالعلم تفسیلی اول اجمالی معتبر فهد یک تفاق امتصادی به موافقت ال اجمالی ولی اوتای از ضرر علم تفسیلی در دوتا مقامیشو میخواد بحث کنم یک ای اینجا علم اجمالی مثبت تکلیف هست یا مثبت تکلیف نیست لا شکر در اینکه علم تفسیری مثبت تکلیف اگر که علم تفسیری پیدا کنه یعنی تکلیف بردمش ثابت میشه تمام که در مواد شک بدی هیچ تکلیف بردمش نمیشه منتها بحث اینه که در مواد علم اجمالی یعنی علمی که مقرون به دو تا شبهه و اجمال دو طرف داره که اصلش و واقعش و جامعش معلومه همونتها با تعددهش معلوم نیست در این موارد نجمالی که من نمیدونم آیا این زرد نجیسه یا اون یکی زرد نجیسه آیا این نماز باطله یا اون نماز باطله آیا این شخص عالمه، یا اون شخص عالمه، آیا این مشتهده یا دیگری مشتهده آیا این برای این مترتبه یا بر دیگری مترتبه ایلا آخر در موارد های تکلیفی و انسان ثابت میشه یا ثابت نمیشه این هم بده کلام ها مثل قول منصوب به علامه مجلسی اینه که نه تکلیف ثابت نمیشه بر کلام و پی به اعتبار هی منحه اثبات تکلیفه بری و اندر بخمت معلوم به اجمال که معلوم به تفسیر به تمند جز عدم مکند اما وقتی علم اجمالی م داشته باشه مثل موارد علم تفصیلی داره شما اگه یقین به بطلان نماز ظهر داشتید باید اعاده میکرد الان که علم اجمال دار اینکه یا نماز ظهر باطله یا اصل باطله باز ملف به اعاده هس منتها دوتا باید اعاده کن امو لمجغول رحظن یا اینکه علم اجمال مثل شبهه بدویه میمونه و ال نز چیز نیست ا از درم دامت المجلسی حالان درمان و بعضی دیگر از اشگاهی به قائلن به این که علم اجمالی نیست منطقه قول ساید فیلن به و همه روزورین و فوقها اینه که منصف از قول دیگه قائلی فعلا ندار این یک مقام مقام اثبات تنسیف آیا با علم تکیف ثابت میشه می یا ثابت نمیشه یک مقام مقام به دوم اینه که بعد از اینکه کسی باید شد به اینکه این از چیز تکیفه آیا میشه انسان اکتفا کنه به امتصال اجمالی یا نمیشه چون امتصال چهار کمرتبه داره و این مراتب رو خود مستنف در باب انصداد آورد و بحث کرده باب انصدادی که بدن هست شده کنیده نمیشه شاید مطالبی در باب انصداد هست بیارزه به تمام مطالب رسایی خیلی مطالب نافعی داره منیوم همین. مراتب امتصال امتصال چهار تا مرتبه داره مرتبه اول امتصال تفسیلی یعنی به علم تفصیلی تنبوم انتصال اجمالی یعنی به علم اجمالی سوم انتصال وهمی و چهارم انتصال احتمالی و اینها را قائلا به اینکه ترتب داره مادام که انسان میتونه انتصال معلوم به تفصیل داشته باشه حق نداره انتصال معلوم به نشمال میکنه و این بحث در خیلی از کتابها تحت این عنوان مطرحه یه میخواستید بگردید افصال در شروع اورده. اینه که عمل تارک تریقی قلی اجتهاد و تقریق صحیحه یا صحیح نیست شخصی نمیخواد مجتمع باشه نمیخواد مقامل باشه مجتوهه نمیتونه باشه به خاطر اینکه تو مسیرش نیست رامن نست مقلبه نمیتونه باشه عمله تاریک طریقه یه اجتماعه و تولید آیا صحیحه یا صحیح نیست که اصطلاح هم بهش میگن محتاط شخص نخواه به احتیاط کنه نه اجتهاد نه طرقه. آیا عملش صحیحه یا صحیح نیست اختلافت اعلام اختلافت شدید بعضی ها منجره سهت عمل شخص محتاط بیگن شخصی که احتیاط بکنه عملش زید نیست شخص یا باید اجتهادن به احتمان مرسه یا تبدیدن احتیاط نداره. در مقابل جماعتی باید به صحت عمل محتاطن تحت شرایطی. و بعضی های این قول سوم به اینکه عمل ممتاز و بدون هیچ قید و بنابراین در شخص محتاط سه قوله قول مشهور معاصرین صحت عمل ممتاز مشروط بشود. شخص اختیار بکنه عملی انجام بده بر خلاف مبنای عدم فقاهی اصلا نباشه و شرایع دیگه لذا این بحث مگه خواستید پیگیری کنید در کتاب‌های اجتهاد و تقرید. تحت تهذیب عنوانه عمل تارک طریق اجتهاد و تقلید آیه صحیحه یا صحیحیه نه یعنی عمل مؤمن در مرزه صاحب ورعه تصنید کرده شخص مکلف رو به یا مشاهده یا مبدل یا مختاطه زیرا تابعین ایشون آمده ان عمل محتاط در جمله صحیح یعنی با شرطاتی زیرا این بحث همون بحثه منتهی کلماتش فرق داره ما میاد بدون یک چیز دیگه نه این عنوان یعنی در مقام دوم چیزی دیگه داره مطرح میکنه اینه که آیا عمل محتاط صحیح یا صحیح نیست اون شبهاتی که مطرحه در فضلان عمل مختاط یابینا نحوی که قواعد به عدم جواز لعن به حد عمل ممتاز به خاطر شبهاتیه شبهات یا شبهات ثبوتیه یا شبهات اثباتیه اگر کسی به این مسئله مشغولمانسی برخوال فاعل بشه به اینکه عمل ممتاز زنیه همه هم این شبهات رو باید در کنه یعنی هم شبهات ثبوتی رو که در علم اصول مسئله و هم شبهات اثباتی رو که در علم فقمت رحیه همه این شبهات رو باید درف کنید و حتما برای اشتاق بیشتر به این قباهه مراجعه کنند به مصباح اصول آقای و این بحث رو اونجا پیگیری کنید و همجین اینجا در ول شهر بروهی شون و عمل تاره که و قیل اشتهاد و تبدیل و یا صحیح یا صحیح نیست این شبهاتش هم یادداشت کنه این شبهات داره و شبهات اثباتی داره این شبهات اگر کسی هم نکنه نمید. حالا شاید به نظر بعدی برسه که نه چه اشکالی داره ولی نه اشکالاتی داره احتیاط اشکالاتی داره و هم داره میشه به این اشتحال و یا باید تبرید کنه یا مشته باشه عمل محتاج به جمعه یعنی در خیلی حالا یه مقدار بحث و اخ یعنی یه دوم از کلام در این بحث حالا چون تأثیلات بوده و اینها یه مقدار برای که بیاد به بحثها. ها چون دیگه همه عوام شده دیگه در بیست و دو سه روز از سهن عوام ذهن ها برگرده یه مقدار مطمئن دو که و افراد نمود بعد ما سرنه تکیف و به علم از بعدی شما قائل شدید در مبانی متنای اصولی خودتون که تکیف و علم تفسیری ثابت میشه با علم, می علم اجماعی معتبر هم ثابت میشه علم اجماعی رو مقایسه کرده به معتبر علم اجماعی یا معتبر این پیده فرازی از علم اجمالی غیر معتبر بعضی از مواد اجمالی غیر معتبره مثل اینکه یکی از طرفینش یا اطرافش خارج از مرد اطلاع منه یکی از دو لباس نسیسه و یکی شو یکی از رکاهای ما پوشید و رفت در مسامنه قبل من اجمالی داشتم به یکی, یکی از این دوتا نسیس دیگه ولی پوشید رفت دیگه محل اطلاع من نیست بنابراین من در این لباس بخام نماز بکنم دیگه این نداره این بریمانی معتبر نیست اگر لباس ها مونده بود در خودشه معتبر بود ولی الان پوشیده پوشیده بود رفته. از محل اطلاع من خارجه یا یک مثال سابقا میزنیم به اینکه بعضی از موارد تو تبلیغ تو مهونی ها انسان نیاز به قصد داره ولی این قصد سنگین هزینه سنگینی نمیشه گفتنش بده نگفتنش هم بده قوص از محل ابطلاق خارج میشه یعنی اهم متعید میشه در تایه همون دوزو مینادر ما همه رو بیدار کنیم بیان برای ما آب بیارن و داخت کنن و حمام روشن کنن و غسل کنیم برای اینکه خیلی مقیدی اون میشه خارج نه از محل ابطلاق خارج به خاطر در شهن این شخص میز. و شعنیت یکی از مباحث در معتبر مقاحث مح اطلاعی این شخص نیست این گز بهدن در این شرایط شرای محدابتدار نیست و این تو جزوهای سابقم نوشتین مراجع کنید و مفیدید این مجموعه معتبر باشه یعنی زافش محل اطلاع باشه محل اطلاع ابتداع چه اطلاعی به فعل باشه چه اطلاع به شهر انسان باشه در شهر این شخص نیست وقتی در شهر این شخص نیست از محد اطلاعشه به همونطوری که میگن از محل فعل انسان خارجه میتونه از محل شعن انسان هم خارج باشه از علم اجمالی معتمند فهم یک تفاق امتصالهی چرا زیاد هم مثال دادن مثل اینکه شغه کثیره فرکثیره و چیزهایی دیگه حالا الان همه رو میخواییم استخدام برس کنیم مثال زنیم برای این علم اجمالی موتوجی دفته این دهید اقتلاعیه <تصفيق> علم اجمالی میست اونه به تفسیریه در شعن این شرط نیست الان من خود بست کنم مردد میشینیم که بین خوز یا تیمم یا چیز دیگه نه تیمم و رجیفش تیمم خواستم بگم که این محل اقتلاعه اقتلاعه به فعله یا اتلاع به شعن در شعنش نیست خیلی از موارد میگن یعنی شعنیت خیلی از موارد مطرحه ولی در قصد و حوض اینا مطرح نیست در فواید معونه خیلی از چیزها محریه هی شعونات مطرحه ولی اینجا ها مطرح نیست یه شخص قصد میکنه آبویش بین همه می و اینکه که میاد لا اونها ثابت نیست این حکومت داشته باشه برای این موارد این حتی نیست به هر یک تفاق امتصال به موافقت نجمالیه اون لا ثابت نیست اصلا عرفش ثابت نیست به خاطر این در این میشه و از موارد سوالات میشه امیل علی السلام این از موارد سوالات خودش رو توسط وسط اممار از در اصول گافی هم داره در مکان فاطمه بخواهیم این فیان برای خوب نزین سوال رو امامالی بکنس و انبال میدن پرسی این خیلی مهمه ولی خوب خیلی از چیزها رو میدن بریای قدیم که دستشون کوتاه بود از خیلی از که دامات و علوم اونها در می آوردن و شهرت پیدا لا حیال از چی اومد بپرسه چشان خیلی هم اشکال نده به هم یک تفاقی امتصادهی به نوافل اجمالیه ولو متعید سرال علم تفسیری یکی از دو تا لباس نجیسه این شخص میتونه از زن بپرسه کدومش شسته شده کدومش مونده و علم تفسیری پیدا بگونه به لباس پاک یا نجیس نمیخواد بپرسه یعنی نمیخواد با این حرف بزنه چون نمیخواد با این حرف بزنه یا نمیخواد بپرسه دو تا نماز میخواد بخون راحتن. ولو تیست در علمت تفسیه هم موافقت اجمالی دوتا رو دیگه موافقت اجمالیه به در آخو کنه اجمالا نه با دو تا در مقام امتصال استاد هر یک تفاق امتصال به ولو تیست در علمت املا و کتابا بهی علم مع تعظور علم تفسیدی تع ازظور داره علم تفسیدی حاصل نمیشه و از کی بپرسیم چ میدونه؟ کسی نمیدونه کدومش کدومش ندزه علم تفسیدی حاصل نمیشه، وقتی ما ما اکتفا کنیم به معافارت ایاجانیگه. یعنی اگه در مقام ان ساله دوتا یه خلایهجزوز ااجام و شخص اینه، احد و موازئدون من معرفت زیدن به شخصی به من یه پولی دادن گفتن بده به زید نمیدونم زید بن یا زید بن شاستان نمیدونم کدومش بدیم خب به هر دو میدیم به هر دو همین پول رو میدیم یعنی هزار تومان رو به دو نفر میدیم به هر کدومش رو. نه اینکه تقسیمش کنیم به هر کدوم 1000 تومان میدیم و آلوزری گشتن نداره تا پیداش کنیم <تصفح> بعضی از موارد مثل فکریه رو یه هزین یاد از انسان مطاربه میکنه، شک داریم که مستحب بود یا نبود بود دو تا بده به این دالی به دیگری هم باید بیدیم سه بومی هم میاد همین تو چهار هم میاد همین تا اینکه بری از بشید از دون آیا میشه اکتفا کرد به این یا نمیشه حتما باید بگردید فقیر واقعی رو پیدا کنیم بله؟ <تصفيق> نمیشه به خاطر اینکه آن یه این شباهاتی داره دیگه گفتم شبهات سبوتی و اسباتی داره که به یکی از شبهات این وضع و قربت و امثال اینها نه. شما با کدومش میشه انتصال کردیم به رو خواهیت معلوم باشه با میگن نمیشه میگن نمیشه یک چیز از شما خواسته بودن شما باید یه کار انجام میدم مثل اینکه شما نماز احتیاط برات بازی به نمیتونی نماز رو قد کنه دوباره نماز رو بخونه بگی نه من بجایی یکی چهار رکت کندم بگیم نه نمیشم اون یه رکت رو باید اضافه می کردیم شبه این طوری یعنی ثبوتی و اصطاعتیه فلاه ی دوز اکرام و شخصین اهدوما زیدون معد تمک کنم معرفت زیدن به شخصین خیلی از موادین از خلاف و می داره. و ف فکسیه خودش رو به فامیلش نمیده میندازه به صندوق فامیلی که مقدمه میذارن میندازن به صندوق راه نه سوال میکنن نه مهمه برامشون فیادن در این پارای خوبی میکنن تبلیغات هم نمیشه تبلیغات باید بشه که با با فطریه اولا و استهبابش بلکه چه واجبه طبق نظریه شیخ مفید و بردی ها به فامیل باید بدید بلکه میارم میدازن تو این صندوق ها رو راحت میرن نماز میکنن برگردن میرن چیلی می نیمه ها نواید دعایت به شخصی حقدار این ها رو بندازه به صندوق با اینکه فامیلش یا میتونه فریدش پیدا کنه با خیلی میگن ما تو فامیلمون فرید نداریم این اصلا داره خیلی قبول علاوه بر دو تکرار مشفتین احد و ما معتمک کنه من معرفت زیدن به تفصیل و به شخص ولا این ولای از دو ثو دو تا نماز هم نداریم بخونیم ما یک نماز با شرایطش بگی نه من دو تا می تو یک لباس یه بار می خونم اون یکی هم یه بار دیگه می دو تا میکنیم نه این هزینه داره دو تا فرشته فرشته میخواد اینا رو ببره بالا می بدن یہ نماز و فعل و سلاته این مشتبهین و بین مشتبه اینه و امکان و خیلی از شبهات که حل میشه بعضی از شبهات میمونه منجم موارد فطری و امثال اینا به شخص باید بدی اولویت نیست بلکه تعیونه یعنی شما توی یک ماه رمزان باید, دو باید, دو باید فامیل فریق باشید بیداش کنیم که روز عید فتر اینو برسیم به دستش ولو در شهرستان باشه چه اشکالی داره ماها مثلا بعضی از موارد برای مسافرات های زیارتی ده روز میریم شده یک بار برای رسوندن فتر یه خودمون بریم به شهرستان نه صندوق سندوبم دره ایندازیم و جا میریم ده روز عید فتر مونده میریم که پاکت ها رو تو خونه ها میدازن های خوبی اود کلومی سر این اینطوری نمیشه اینا رو باید عایت کنیم. فرخصصور رو ما ما عملش داریم میخونیم اگر کسی بخونه عمل به اینها نکنه گرفتاری درست میشه. فامیل انسان رو میاره بکنید اونجا همون چیزی که میخواد نمیدن چه شادی داره شما فامیل خود رو کنی. کنیم. و دیگر ثروتمندار و خیلی از ثروتمندان اون یادره عملش. فستی ما رو ولکلام منم جهت اولا حالا جهت اثبات تکلیف در دو مقام مخواد بحث کنه جهت اثبات تکلیفش خودش دو مرتبه و دو مقام داره. و این دو مقامش کاملا اختلافیه ولکلام منم جهت اولا یعنی اثبات تکلیف با این اجمالی یک به اون فی مقامه لعنما اعتبار از علم الاجمالی لهو مرتبتان دو تا مرتبتان المرتبتالعودان حرمت المخالفت قطیه لما در علم الاجمالی دو تا حکمت رهی یکی وجوب ممافقت قطیه یکی حرمت مخالفت قطیه اون چیزی ما سندمه این در این حرمت مخالفت قطیه هست کسی حفظه مخالفت قطعیه نداره یعنی الی مجمالی داریم اونا مثل جه تلقی کنیم دیگه چه چاره نداره مخالفت قطعیه قطعاً حرام نه البته من از نظر اون برخلاف دیگه این اون اونم نداره به طور احتمالا از نظر علمی میشن اینو مطرح کرده ولی از نظر فلسفی قابل نیست از شرحی که بر بربعی دارن اینطور خواهی نیستن و از ثانیتو مجوم موافقت قطعیه حکم دوم مجوم موافقت قطعیه حالا وقتی مخالفت قطعیه حرامه من نمیتونم هر رو ترک بکنم آیا موافقت قطعیه هم که همه اطراف رو رعایت کنم رعایت همه اطراف یا نه وجوب موافقت قطعیه یعنی رعایت همه اطفال موافقت قطعیه حاصل میشه یعنی در هر دو لباس نماز میکنم به هر دو شخص این طور رو بدم موافقت قطعیه حاصل میشه بعد از این آیا این واضحه یه واضحه هست و متکفل لتکلم فلمرتبت ثانیه یعنی وجوب موافقت قطعیه در مباحث برایت و اشتغال میاد اونهایی که قائل به برایت هم میگه موافقت قطعی واجب نیست اونهایی که قائل به اشتغال میگن میگه موافقت قطعی واجب نیست و المتکفل لتکلمه ویوجوب موافقت قطعی یا مسئلت و برایت و اشتغال این در شک که فل امتصال یعنی فل مکرفته بگه که اونا که قاعده به براعت هم مفتلقا به عدم وجود و, و که به احتیاط هم اونا به وجود و و, و مقصود مقام اول یعنی مقصود در این جهت اودا مرتبه اودا از تقدم فیلم مرتبه اودا یعنی حرمت خالفت خطی آیا میشه با علم اجمالی ما مخالفت بکری بکنیم؟ علم اجمالی داریم کبجه حساب کنیم انگار این علم اجمالی دارم به اینکه یکی از دو نماز هم باطلیم ایش نهایت نکنیم آیا صحیح یا صحیح نیست؟ من مقدم از کلام به مقام ثانی به هواه کفا و علم اجمالی فیلم نسال هم یه تشفیشی داره در تعبیراتشم همه ولی منی آن خیلی مهم نیست چی مخصف به یه دمیراش به چی برمیگنده و تعبیراتشم هم تعوض شده فرم مقصود فیلم آمن اول اینان ها نباید اینطوری می اومد ولی همه اومده در از مسند معلومه که در دو مقام میخواد بحث کنه مقام اولش هم دو تا جهت داره دو تا مرتبه داره وجود موافقت قضیه و حرمت مخالفت قضیه حالا والنقط من کلام المقام آیا انتصال اجمالی کافیه یعنی احتیاط در اراده اشتها تضیق هست یا نیست چرا این مقدمش کرده خاطر مختصر بودنش بحث مختصریه و خیلی طول نمی‌کشه و نقطه کلام لقام اصدانی لختصار و هو کفایت الامتصال اجمالی کفایت امتصال اجمالی یعنی احتیاط لازم نیست مجتهد باشی شما بروه تخصیصی تاریخ بخون. بکن تخصیصی نمیدن بکنید تفسیر بکن لازم نیست مجتهد باشید چون دیگر هم دارم میشن این هم مجتهد بخونم چی میگن دیگه آغازه که هست میگن دوره شما تخصیصی بخونید و لازم نیست شما مجتهد بشید اینا باید به این مقام اینا باید به کفایت انفصال اجمالی آرشون هم نمیاد فردا میبینی پنجای شست سالشه مسئله میپست و خیلی گریه داره من یه زمان پیشه یکی از معاصله بودم یه آخون میومده اون شد سیندش از اون معاصر بیشتر بود اون معاصر شیخ بود اون و در همه چیز هم بیشتر از اون داشتم محاسنش هم هم بایش هم در رابطه با نماز جمعه و نماز ظهر جمعه داشت می که بخونیم نخونیم بعد یه صبر بکنیم سبر نکنیم ماضی به عیدیمیه که بازی اینطوریه یعنی خیلی ای حیب به بزرگیه ولی چون عمومیه احساب نمیشه بخاطر اینکه میگن شما تخصصی بگیرید همه لازم نیست باشه به با اینکه همه طلبانم اگه مشکل بشن تازه کم داریم اگه همشون بشن های خوبی باز کم داری ولی آوازه میاندازن سر صدا میکنن که نه تخصصی باید بشه خب با تخصصی چی در چی در نمیده طلبه هر چیزی به بشه اول باید مشتهد باشه بعد دل فیلسوف بعد متکله مفصل و امصالی یا همه باید بلند باشه چیزی نیست که بگیم نه ماها ذهن منابا نمی کشی اینه عبدالکریم و ذهنش می نه اینطور نیست. الان از که ها دارن از این بچه های معاصل معلومه این بچه پنج ساله چقدر مسلط به کامپیوتر. برای ذهنان راه داره ولی تبلیغات خیلی بر علیه ماست تبلیغات بر علیه ماست یه زمان در مزیع افتر یه را آورده بودن در سفلا بگه من همونجا بودم داشت میگفت که خیلی دنبال این نباشید که با سفاوند بشید چون همه چیز را همه کس دامند همین بسی دیگه که تبایی درست با اینکه میتونه بگه که نه همه چیز باید شما یاد بگید میگفت لازم نیست چه لزومی داره اینها رو ما بیاریم حرف بزنم نمیذاره یعنی وسوسه نمیذاره اینها رو انسان خودش میدونه آیا الان فکر کنید تا فردا امتصال اجمالی کافی هست یا تافی نیست شبهات داره ا رو دفت کردی به جذم میرسي مبنای خودت معلوم میشه احتیاط در کنار اشتغالوتغلیب باید باشه یا نباید باشه اختلاف دارن چهار پنج تا قول رو ادله دارن و شبهاتی بوده و دفعش کن. الان نمیشه. نمیشه چون علوم گسترده شده کجا سرد شده. اگه بگیم علوم رو شده پس علم ما از شیخ باید بیشتر باشه با اینکه اینطور نیست. اصلا اینطور نیست. یه موانعی رو برای انسان می وقت که تراشیده بشه هدف را از انسان میگید یکی از پرپای یکی از ادبای اروپاییه نمیدونم کی اسمش ولی از قدیم یادمه که خیلی حرف پختهی زده و ملخصش اینه که موانه طموع وحشتناکی هم که انسان اگه چشمش رو از هدف برگردونه اونا را میبینه یعنی انسان انسان‌های بیا هدف مانه می بینن هدف هدفدارن هیچ مانع نمین اوندارن به هدف نگاه می‌کنه. ولی انسان‌های یه مانه نمی آقا زن نذاش ب چه نذاشن آمد رو ضرا رفتیم آمدین نمیدونم اینا عضر نیست نه مانع نیستن موانع مال انسان‌های بیا هدف یعنی ملخص کلام می شخص که موانع مال انسان‌های های انسان هدف داره مانع نمی پس هیچ نیست سعی کنید همه علوم رو جذب کنید جمع کنید و مایستر هم از بر انسان اینطور نیست که بگم نمیشه سخت رو در انتباهان جوانی بعد اگه سن انسان بالاتر میره علوم که نیاز به این همه چیز نداره مثل فلسفه مثل کلام مثل تفسیر نیست که علم چیک. این بحث همون بحثه. اگر که علمه دلواره دلواره تقلید تقلید نه، در تایید شما یک نماز میکنی. نه در. تغلیدی طوری دیگه شما یه نماز میکنید اون یک ساعت نظر اون شوبه است اون شوبه در باب ترغیب دیگه منصفهیی نمیگه اون شبه نداره شخص که واسه اینکه باشه و من مالی احتیاج کنه نظریه دیگه درخواست کنه و به هم عمل بکنه علاوه جز من یک عمل رو انجام میدی ولی در احتیاط شما دو عملی انجام میدی کدومشون مال خدا بوده و واقعی بوده نمی دونیم نه باید بریم شبه هست نه شبه هاته شبه هاته میاد در تقرید هم شبه هاتی هست منطقه میگن این بحث محص همون بحثه خیلی ها در شرح قروه تحت همین مزمون ها بردن سیل در از ذریع. شیخ توسی در عده و دیگران بین این عنوان عمل تارک تریح و یه اشتحاده و تقریح در قمانین هم اومده در معارب اومده تحت این عنوان مطرح میشه نه هدار علم اجمال ندارد. این بحث اونطوری مطرح کردن بخواه که کفایت طول امتصال اجمالی امتصال اجمالی کافی هست یا کافی نیسته. یه مسئلهی ما باید زنگ بزنیم از این به اون ورس کنن اون به اون ورس کنن یه جواب ما بدن نه چهار تا نماز می کنیم. زودتر از اونم تمام میکنیم. کنیم شارجی رانسلوم هم تمام می چهار نماز می چه اشکالی داره امتصال اجمالی من نمی‌تونم فرقی رو به پیدا کنم به همه فامیلا فطریه می‌دم. به هر کنون پنجه هزار کمان و راه چه اشکالی داره؟ و مقتضای بالامتصال بالامتصال قاعده جواز الاختصار به امتصال اجمالی و علم اجمالی به احتیاط مکلفه مقتضای قاعده عقلی و عرفی مقتضای قاعده عقلی و عرفی اینکه امتصال اجمالی کافی یعنی احتیاط کن چرا تحقیق کنی چرا بخوایید دنبالش بگردی مسئله رو یاد بگیری؟ نه تقلید نکن و مثلا لازم می یاد بگیری احتیاط کن مختزای قاعده عقلی و عرفی جهاز اکتفاق امتصال اجمالیه قاعده عقلی اینه که عقل حاکمه به حصول امتصال بعد از تطابق معتیم به بامعبومه این یعنی هر موقتی به ما با معمورم به ما مطابق باشه امتزال حاصل شده دیگه آقای هالک به حصول امتزال در موارد تطابق موقتی با معمورمه. آنها یک نماز در لباس تاهر کرده بودند. من دو تا نماز کردم یقینا یکیش با لباس تاهری. دنبالی موقتی به با معمورم به مطابق. و عقل حاکمه به حصول امتصال برای علم به نهوش اجمادیه اما قاعده یه عرفی قاعده عرفی که اهل عرف شخصی رو که اتیام بکنه به مطروب مولا رو و مطروب مولا رو اتیام بکنه اینها جزء افراد ممتصر و مطی حساب بکنه یعنی تا از اهلورف این طوری بلو در زمین اموری باشه گفته بود این کار رو انجام بده این صدقه رو به شخصی بده و ما اینو در زمین اموری انجام دادیم به من گفته بود شما آب بیار این آب آوردن در زمین اموری بوده اولف فینال رو گرم متصده و مطیع اشلا کرد مختص در قاعده و الضیه جواز اختصار در انتصال به دلیل اجمالی به اطمینان مکلف به خب این میگه در توسل که واضحه به من گفت تو انگواز رو بشو شستیم در شبههی بگه نداره این و بشوستی در توسل یا هیچ شبهه‌ای میگه نداره انما کلام کلامش شبهه در تعبدیات و این شبهات رو مخاط در اما پیمالای احتاج سقوط و تکریفیه اداء قصد قربت اطاعت و اطاعت فی غایت بزوم یعنی در توسطیات که امتصال اجمالی یقینا تام هیچ مشکلی نداره و تکیف انسان ثابت میشه یکی از این دوتا آب مضاف بوده یکی مطلق بوده و ما لباس رو با هر دو شستیم و با هر دو روزو گرفتیم یکی از آقا مطلع بوده که مضاف بوده ما با هر دو روزو گرفتیم یا با هر دو لباس رو شستیم در توسل یاد شبهه نیست در شبهه سهوتی در شبهه اثباتی پس اما فی مالا یحتاج یعنی در توسلیات اما فی مالا یحتاج سقوط و تکریفی حلاق از در قربت و اطاعت و تیگه قایت یعنی جواز اختصار در قایت وزوح هیچ اشکالی نداره به خاطر اینکه در واجبات توسلیه مجردت حصول عمل در خارج مطلوب مولاست نه حصول عمل به یک نحب خاصی شار گفت این مگه رو دست نشکنم حالا ما کافر دست کنه. میخات منافق دفنش کنه میخات مؤمن دفنش کنه میخات با قصل قربت باشه میخات نباشه و این دفن بشه مثل خیلی از امور حسبیه امور حسبیه شاره میخواد این اتفاق بیفته شاره دوست داره مسجد بسازند شار دوست داره مدرسه بسازند دوست داره تخت بسازند دوست داره نمیدونم چیزهایی دیگه بسازند که دیگران مردش های مناسب و خوب و مفید داشته باشند از امور حسبیه ما چرا موبایل فروشی باز کنیم ايش طرف مفتضح نیست این همه موبایل فروشی این همه نیروهای جوان صرف فروش موبایل و بند تومای بند چیزو قاب گوشی و چی و چه افتضاحی خدا میدونیم بازارچه از زهرا هیچ نیست به این حس این همه چیز آنها اونجا میشه نمیدونم برنامه میرزنم برنامه از میرزنم هیچ کدام به درد ما چرا به این چیزا سرمایه بدیم سرمایه بده استخف بزازن وردش برن بعد مفید باشه از گناه و معاصی همه چیزم به دور باشه. اون حسیبیه لازم نیست حتما ما قصد قربت کنش اتفاق بیفته پل بساز الان پلسازی ما به صورت شخصی هستم نداریم خیلی ها مثلا میان مدلس سازی میکنم ولی پلسازی نداریم جاهای حساسی که تصادف داره پلسازی نیست بخوادیم قیم نداره قیم میخواد ما تبلیغ که میریم تبلیغ کنیم جاهای خطرناک پل بزن چه اشکالی داره امور حسبیه. امور حسبیه شارع میخواد این اتفاق بیفته. چه با قصد قربت و چه با قصد شیطان. اتفاق بیفته. مشکلی برای مردم هیچ نیاد امور حسبیه بشید. نه اینکه امور قربیه. نه امور حسبیه شارع میخواد این اتفاق بیفته. حالا به هر نیتی. اگه نیتیشون خوب باشه تحتی و کلها شریفه در تمام موقاتشون. ولی اگه به نیدیت باشه خوب آتشی میشه اما فی مالای احتاج سقوط و تکلیفیه را قصد قربت و اطلاع تا فیقایت دوز. و اما فت تأخدیات این نقل اشکال و شبه سبوتن و اثباتن در تأخدیات تکالیفی که صحتشون متوقف بر قصد قربتی بذنش که من علم به وجوب احداث صلا دارم یا جمعه یا صبح کدومش باید بخونم آیا می‌تونم هر دو رو بخونم ما هر فرض رو بخونم بحث علم تقسیم یه تادری واقعاً درسته نمی که کدوم نه علم تفصیلی به انتصافی میتونه کنه بحث ما در علم به انتصابه به اداره اون دست ما نیست و نمیدونه آره انتصافی به میتونه یعنی میتونه بپرسه و بگه آره آره موارد انتصاف علم تفصیلی میتونه تایید کنه و اما پیمای احتاج دا قصد قربت و اطاعت و ظاهر و ایزن تحق قول اطاعت ایزا قصد این تلت الاتیان بشیه که و خودش به کان اهده المعمور به و ایزن تحق قول شده که در تحب بودیاتم مانعی نداریم یعنی در تفقدیات شبههی که بوده اونم منتفه کسی که علم اجمالی داره به وجوب زهر یا جمعه و هر دوره اتجام میکنه احتیاطا این منتصل و مطی حساب میشه که احتیاطش مستلزم تکرار عمل باشه چه نباشه و شانی در, در شخص هر دوره برخونه و نیت بکنه هر کدومش و بهم واجب از ظاهره و ایزند هر قول اطاعت ازام قصر در اطیام یا قصد در اطیام ها به شگه این یختبو بکنه ما از معمول به الان کنه ها نیشون شبهات سبوتی اثباتی رو وارد نمیدون هم تا در طب و دیگر حالا در کتابه های بالاتر در شروع قربه میبینید خیلی از شبهات مطمئن شبهات اثباتی و سبوتی یعنی شبهاتی که در اصول مطلب و که در فقه با هم مطرح کردن اونا چطور با جواب بدین اشخاص آیا میتونن با قدرت بر امتصال تفسیلی امتصال اجمالی بکنن بحث ما مردم اینه دیگه شیخ میگه میتونن بنابراین احتیاط در عرض اجتحاد و تقرید هر اونا که مخالفن میگن در پروبش اگر اجتهاد و تقلید ممکن نبود میتونه احتیاط آیا احتیاط در از این هست یه در طول این هست اختلافیه و قوانین رو و حواشیه از اون قذرینی دور رو ها بخونید خیلی مفصل و مطالب رو بیدنه از و اقتصادی فرقی نکنم با من. نه فرد